بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین الطاهرین المعصومین لا ما بقیت الله فی الارزین اللهم انت السلام و من السلام ولک السلام و علی السلام سبحان ربك رب العزت عما يصفون و, و على المرسلين المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایوها النبی ورحمة الله و برکاته. السلام علی الامت الهادین المهديين السلام علی جميع بیا الله و وملائكته و اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علی امیر المؤمنین السلام علی صدیغت الشهید السلام علی الحسن و الحسین سید شبابه للجنه اجمعین السلام علی ابن علي الحسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین السلام و علی جعفر بن محمد الصادق السلام و علی موسی جعفر الکاظم السلام و علی بن ابن موسی السلام و علی محمد ابن علی الجواد السلام و علی بن محمد الهادی السلام و علی الحسن بن علی الذکی السلام و علی الحجت الحسن القائم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغیت و الليل و النهار ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم السلام على الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين الله که ازاداری ها و شرکت در جلسات و اونچه که در این ایام در رابطه با ابی عبدالله علیه السلام هر کس به هر شکلی انجام داده مورد رضای الهی واقع شده باشد و الله به معرفت و شناخت ما نسبت به ابی عبدالله افزوده شده و عمل ما آگاهانه تر و با معرفتی بهتر صورت بگیرد الله. خب بحث ما این بود که چرا هدف انبیا تحقق نیافته و امام حسین علیه السلام و واقعه کربلا در رابطه با موانع تحقق هدف انبیا چی بیان فرمودن و ما اگر بخواهیم از آشورا و ابی عبدالله درس بیاموزیم برای حل این معضل و رسالتی که خودمونم قراره در این رابطه داشته باشیم چه درسهایی رو فرا میگیریم. گفتیم وقتی بحث هدف انبیاست طبیعتا رابطه ابزار معرفت در درون ما با اونچه که انبیا از طرف پروردگار آوردند قراره برقرار بشه و این رو برای ما مشخص کنیم. در درون ما مهمترین عاملی که قرار ارتباط با رسالت انبیا برقرار کنه عقل است و اون چرا که انبیا از طرف خدا آورده‌اند عنوان وحیه پس در واقع این بحث برمیگردد به این عنوان رابطه عقل و وحیه خب در رابطه عقل و وحیه باز اشاره کردیم چند نظر وجود داره نظر اولیه که جزء بحث ما نبود ولی اگر افراد بخوان در این رابطه بحث و تحقیق کنند حقیقتا جا داره و بایدم دقیق و امیر روش نظر بدن بحث کنن بررسی رسی کنن تحت این عنوان آیا عقل وحی را میپذیرد یا عقل وحی را رد میکند؟ آنانی که میگوین عقل وحی را نمیپذیرد در تاریخ مثل براهمه که اشاره کردم جواب خواجه نصیرالدین توسی رو هم در این رابطه ارس کردم متکلمین فلاسفه عرفا بحث های مفصلی دارند عقلی که به چه دلیل عقل وحی را میپذیرد این فعلا جزء بحث ما نبود از این رد میشیم. ولی بحث ما قسمت دوم بود دسته دومی که میگن وقتی عقل را قاضی قرار میدیم و عقل را به بررسی وا می عقل میگه من وحی رو میپذیرم و قراره که از انبیا نبوت وحی استفاده کنم خدا انبیا رو فرستاده تا ماها را به سعادت و کمالی که مورد نظر الهی است نائل کنند اما اینجا چند دسته شدند و این چند دستگی و نحوه تفکری که در این رابطه افراد نسبت به وحی دارند خود این مشکلاتی رو در جهت تحقق هدف انبیا ایجاد نموده اونا چیه یه دسته اومدن گفتن وحی فقط تو مسائل شخصی اخلاقی موئزه هایی دارد و انسان در جنبه های فردی بناست از وحی استفاده کند دیگه مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نظام خاص یک جامعه ربطی به وحی ندارد شبیه اونچه که ما در دنیای مسیحیت فعلی داریم شما اگر قرار یک مسیحی متدین و معتقد باشید هیچ کاری به دستورات عملی اجتماعی و غیره در آیین حضرت مسیح ندارید. اونها رو بر مبنای به قول خودشون خرد جمعی یا اون چرا که جوامع بر مبنای تجربه و علم و عقل به اون رسیده به اونها عمل می کنن. شما کاری در جنبه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظام اجتماعی به مسائل وحی نداشته باشید فقط یک شمبه برای شنیدن موعظه به کلیسا برید، یه سری مسائل اخلاقی رو هم رعایت کنید. تعبیری که در این رابطه به کار یعنی دین یک مسائلی را برای ما عهدهدار است که اینها همه مسائل انسانی نیست. لذا رسالت وحی اقلی است اکثری نیست یعنی یک محدوده خاص و حد عقلی را عهده داره خب اگر این نظر رو ما پذیرفتیم و تابع این تفکر شدیم اصلا انتظار تحقق هدف انبیا در نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی غلطه چون میگیم مثلا دینم تو رسالتی نداره وحی همچه وظیفه ای نداره و نمیتونم همچه کاری بکنه خب اینجا باید این مطلب روشن بشه دسته دیگر در اینجا گفتن نه وحی چون از طرف پروردگار است گونه که ذات اقدس الهی در همه شعون تکوین عالم این نکته ذریفه انایت بفرمایید گونه که همه شؤون تکوین عالم در تحت تدبیر حضرت حق است خداوند فقط خالق نیست خداوند ربم هست همونطوری که خالق کل شیء رب کل شیء ام هست خب لازمه خالق کل شیء ای چیه آیا ما میتونیم خالقیت خدا را عقلی بدانیم بگیم که یه جاهایی خدا خلق کرده بقیه رو دیگران آفریدن؟ نه این عامه خداوند خالق کل شیعه ربوبیت پروردگار تدبیر و امور عالم در آلم تکوین هم فعلا در تکوین تا بعد در تشریف این هم آمه یعنی اینجوری نیست که تکوین عالم مثلا یه محدوده از تکوین عالم رو خداوند براش نظام معین کرده باشه جای دیگر رو یه محدوده دیگر رو به احده بقیه گذاشته باشه در ربوبیت پروردگارم همینطور اگر ما قائل شدیم غیر از خدا خالق هست مشرکیم شرک در خالقیت اگر قائل شدیم غیر از خدا ربست مگر ربوبیتی که به ازن او وظیفه ربوبیت گرفته باشه مثل خالقیتی که به ازن او مثلا در قرآن کریم برای حضرت عیسی مقام خالقیت قائل شده نس سریح قرآنه که حضرت ایسا می فرماید که من میآفرینم من خالقم من از خاک برای شما پرنده می آفرینم اما بعدش قید به ازن الله داره یعنی خداوند به او اجازه داده در این محدوده وارد بشه به ازن الله صفتی از صفات الهی یک ویژگی رو بر مبنای مظهر حضرت حق شدن به بروز بده خب همونطوری که در خالقیت اگر ما قائل شدیم غیر از خدا خالق است این شرکه در ربوبیت هم اگر خدا را رب کامل ندانیم غیر خدا را برای ربوبیت دخالت بدیم شرک در ربوبیت و لذا بحث رب العالمین که مطرح میشه یعنی مربی همه عوالم همه موجودات خب اینم یک نظره اگر خدا خالق کل شیعه رب کل شیعه هم هست در میان کل شی یکی از این اشیاء به معنی فلسفی از این شی موجود انسانه و اشرف اشیا است اشرف مخلوقات است این انسان تنها زندگی فردی نداره این انسان زندگی خانوادگی هم داره این انسان زندگی اجتماعی هم داره اگر خداوند رب العالمین است برای کمال خانوادگی انسان باید ربوبیتشو نشون بده برای کمال اجتماعی انسان هم باید ربوبیت رو نشون بده لذا میبینیم در برخی از آیات قرآن کریم ربوبیت خدا در تکوین را با ربوبیت خدا در تشریه کنار هم قرار داده الان آیه براتون میخونم خیلی جالب و قشنگه میگه همونطوری که خدا تکوین عالم را بر مبنای تدبیر تامه الهی قرار داده تشریع عالم را هم بر مبنای تدبیر عامه و ربوبیت عامه حضرت حق قرار داده خب این دو نظره ما الان مشکل اصلیمون در بین پیروان ادیان این مسئله است در قبل از این مرحله یه مشکل داریم با کسانی که وحی رو قبول ندارن انبیا رو قبول ندارن. شاید حتی خدا رو هم قبول نداشته باشند. باشه مسئله نیست. اونجا بحث می کنیم، ارائه می کنیم. انقدر بحث شده، انقدر کتاب در این زمینه نوشته شده، مقالات نوشته شده. اون بحث دیگری است. معمولاً هم با دوستان عزیز جوونی که در این زمینه ها سوال دارن، همیشه گفته ایم هیچ اشکالی نداره، واقعاً بپرسید، نگران نباشید. اینا مسائلی است که به ذهن انسانها خطور میکرده در طول تاریخ هم مطرح میکردن حتی خدمت ائمه الهی علیه السلام می‌رسیدند این اشکالاتو مطرح میکردن ائمه بینها جواب میدادند. به امام صادق عرض میکردن شما به چه دلیل میگید خدا هست امام براشون توضیح میدادند. به امام صادق عرض میکردن دلیل شما برای اینکه پیغمبر اسلام حقه چیه به امام صادق عرض میکردن دلیل برای اینکه شما امام حقیقی چیه اینا طبیعیه اینا تو دین ما هست بحثای کلامی بینا پرداخته عرض کردم این قسمت دیگره ولی مشکل ما از اینجا به بعده وقتی ما اومدیم گفتیم وحی را قبول کردیم دین را پذیرفتیم متدین شدیم معتقده به نبوتیم این اقلی حتی گاهی کار رو به جایی می رسونه که بنده اخیرن یک مساحبه را که در سایت ها بخش شده در بس عرض میکنم اگه لازم شد بعد دقیق با مدرک ارائه بدم میشنیدم دیدم طرف تا این مقدار جلو رفته میگه وحی حق است پیامبر نیامدن به شما بگن هر برای کمال شما لازم است من به عنوان پیغمبر و قرآن و وحی براتون میارم من فقط اومدم به شما نشون بدم یاد بگیرید که خودتون چجوری برای خودتون قانون و شریعت درست کنید. تا این حد اگر پیغمبر فرمود نماز بخوانید ما امروز می توانیم با خرد جمعی بررسی کنیم که آیا این حکم پیغمبر یه امری بوده مقطعی برای اون زمان که مردم وادار کنه یه مقداری تو را بیان حالا که افراد تو را آمدن میتونیم بگیم میتونه دیگه نمازم لازم نباشه تا این حد یعنی درست خلاف نس سریع وحی نس صریح قرآن یا فردی اومده تو سایتشم گذاشته تحت عنوان که ما وحی را قبول داریم، قرآن را وحی می دانیم. حالا گاهی اون وقت ممکنه به اونجا برسیم، بگیم قرآن را وحی نمی دانیم. اون یه بحث دیگریه. میگه وحی رو قبول دارم، قرآن را وحی می دانم، ولی اگر در قرآن آیه هجاب آمده، من تصورم اینه، اینجوری فکر می کنم، این مربوط فقط به زمان پیغمبر بود. پیغمبر میخواست یه مقداری فساد اجتماعی رو از بین ببره در اون جو زمانی نیاز بود که بیاد بگه هجاب مطرح کن. ولی امروز اگر با هجاب بودن یا بی حجاب بودن دیگه نقشی در فساد جامعه یا اصلاح جامعه نداشته باشه پس ما میتونیم بگیم دیگه هجاب لازم نیست. که با یکی از اینها در امریکا من بحث میکردم به من می که من میگم ذبه اسلامی فقط مال صدر اسلام بوده حالا احتیاجی به ذبه اسلامی هم نداریم که من یه آیه قرآن براش مطرح کردم گفت این آیه اینجوری گفته گفتم آیه ماضیه یا مزاره که بعد عرض میکنم این مقدارم عربی بلد نبود بعد که براش توضیح دادم جا خورد معلوم بود که آدم مقرزی نیست ولی این مقدار بلد نبود. تا این مقدار پیشرفتن خب اینجا ما چکار کنیم؟ اگر ما توقع داریم وحی تحقق بیابد، حقائق وحی در این عالم خودشونشون نشون بده. خب اگر بنده بگم وحی تو این زمینه حق دخالت ندارد، ربوبیت الهی ربوبیت ربوبیت نیست ما هم میتونیم درود خالت کنیم، خب پس معلومه که دخالت ما یا درسته یا غلطه اگه دخالت ما غلطه که عدم تحقق بر مبنای دخالت غلط ماست اگر دخالت ما درسته پس معلومه خوب دخالت نکردیم پس اینجا ببینیم مشکل چیه ریشه این مطلب خوب انایت بکنید ریشه این مطلب در الهیات مسیحیت بوده بله در الهیات مسیحیت شاید به معنایی حق بوده به چه معنی الان ارز میکنم وقتی کتاب تحریف شد حتی اطرافیان حضرت عیسی حواریون خودشون با هم اختلاف پیدا کردن چهار انجیل معروف شد چند انجیل غیر معروف الان یه دسته از مسیحی ها اینا مرمونا توی امریکا کانادا هستن کلیسای جدا دارن انجیلشون با بقیه انجیل ها جداست من کلیساشون رفتم انجیلشون هم گرفتم پیش من موجوده در انجیل مرمون ها نوشته شراب حرام است هجاب واجب است شما خانمای راهبه مسیحی ها رو دیدین تو دیرها توی تلویزیون هم لاغل دیدید اگه نرفته باشید توی کلیسا ها هجابشون چجوریه؟ این این خانوماشون پوشش دارن مدارسشون در امریکا و کانادا پسر و دختر جداست یعنی معتقدن گوشت خوب رو حرام میدونن خب این این انجیل مرموناست ولی در انجیل چار انجیل دیگر نه اصلا احکام این چنانی بیان نشده یه تعریفاتی در کتاب صورت گرفته اختلافاتی بین پیروان حضرت ایسا به وجود اومده یه مسائل سیاسی هم دخالت کرده بعد برخی از پیشوایان دینی مثل کشیش های کلیسه ها اطلاعات دقیقی هم نداشتن در کلام مسیحی، در فلسفه مسیحی، اون دقتهای عقلی که بنابود بکنن نکردن یه تحریفاتی هم تو انجیل آمد، کم کم علمم شروع کرد به پیشرفت، فلسفم شروع کرد به قوی تر شدن متفکرین فلسفه آلمان براشون سال ایجاد شد اومدن سراغ کشیش ها از اینها سوال بپرسن آقا این مسلم رو چی میگید خب جواب نداشتن قابل دفام نبود مثلا حضرت ایسا پسر خداست مگه خدا پسر میتونه داشته باشه خب این من چجوری میخوام تفسیر عقلی بکنم چجوری توجیه علمی بکنم آقا گالیلی میاد میگه من بر مبنای علم به این نتیجه رسیدم که زمین میگردد طرف میاد میگه که توبه کن وگرنه بشی. میگه خواه این کجای دین میگه؟ مگه واقعا دین باید با علم مخالف باشه؟ پس معلومه یا باید بگیم دینو ول کن؟ قضایی اینجوری شدن در اروپا گفتن آقا دینو ول کن دینای دین اصولا وحی یه چیزای خرافی موهومی غیرمنطقی غیرعقلی غیرعلمی بذه کنار اینا رو از اون طرف یه عده دیدن، نمیتونن دین بذارن کنار، این با فطرتشون سازگار نیست، با وجدانشون سازگار نیست، حتی یه دلایل عقلی داشتن که بشر نیازمنده به وحیه. خب حالا این دین رو قبول کرده، میبینه تو این دین یه حرفایی زده شده با عقل قابل تفسیر نیست، با علم قابل جمع شدن نیست. لذا اومدن چی گفتن؟ گفتن علم و دین با هم جمع نمیشود. دین و فلسفه با هم دیگه جمع نمی شود دین فقط یه تذکرات اخلاقی موعظه‌ای رو میگه دروغ نگید آدمای خوبی باشید مردم آزاری نکنید و حق خودتون قانه باشید بقیه رو باید بریم از علم و فلسفه بگیریم حالا من دو نمونه رو از منابع براتون می‌خونم همین گالیله که تحت تاثیر و اون جریانات قرار گرفت ایشون میگه بین عقل و دین تناقضاتی وجود دارد باید قلم رو به علم و دین را از هم جدا کرد خب چرا دالیلی این حرفو میزنه خوابگردها ترجمه منوچر روحانی صفحه 522 چرا این حرفو میزنه خب دالیله میگه من علمی برام ثابت شده که زمین داره میگرده اینو یقین دارم ولی او به عنوان عالم دینی به من میگه که اگه تو گفتی زمین میگرده محکومه به اعدامی این چجوری با هم تطبیق میکنه؟ پس چی میگم؟ پس قلم رو به علم و دین رو از هم جدا کنید. علم یه چیز دیگه میگه دین یه چیز دیگه میگه کانت فیلسوفه حالا گالیله یه برخورد علمی کرده اذیت شده و لذا اومده اینجوری بیان میکنه یه فیلسوف نیست آلمه اما کانت یه فیلسوفه تحلیل فلسفی داره در اروپا به عنوان یک متفکر مطرحه او چی میگه علم و دین صفحه 92 و 93 دین اقلیست نمیتواند حقایق جهان طبیعی و نیازهای فردی و اجتماعی را تأمین کند این امور از رسالت علم است دین تنها راهنمای مسائل اخلاقی است این عیناً مطلبی است که کانت اون یک فیلسوف مطرح میکنه چرا اینو مطرح میکنه به عنوان یک فیلسوف میگه خب من فیلسوفم من مسائل عقلی و فلسفی برام مطرحه من وقتی میام تو مسائل دینی میبینم یه حرفایی زده که اینا با ادله فلسفی قابل رد کردنه نه تنها قابل اثبات نیست قابل رد کردنه. و بعد توی مسائلی میگم آقا بنده الان توی جمع فلاسفه بشینم نظر شما راجب حل فلان مسئله چیه نظر شما چیه نظر شما چیه قدرت شما را در بیان این نظر از نظر تفکر و تعقل میتونیم بررسی بکنیم و میتونیم نظر بدیم میگه وقتی من میبینم در کتاب مقدس اینقدر شل مطرح شده من چجوری بیام این یک نظریه برای یک جامعه ایدئال بپذیرم لذا چی میگم؟ لذا میگم قلم رو به دین و جدا کنید اما مسائل اخلاقی و موعزهی باشه قلم رو به مسائل اجتماعی و اقتصادی و غیره رو هم بدید به فلاسفه و علما و متفکرین اونا بشینن فکر کنن و راه در بیارن این در دنیای اروپا مطرح بوده؟ از قرون وسطا به بعد خیلی شکل گرفته من دو نمونه امشب نقل کردم ولی لازم بشه از این نمونه ها زیاد براتون نقل میکنم آیا اگر ما رسالت وحی را اقلی بگیریم بر مبنای این انگیزه ای که گالیل میگوید کانت میگوید که دو نمونه امشب ارائه کردم آیا اینجا جا نداره که اولین تحلیل رو بکنیم بگیم وحی با عنوان واقعا وحی که تحریف نشده است نقص ندارد و خودش ادعا میکنه من همه نیازمندی های شما رو تامین میکنم اون وحی رو میگم اقلی است یا وحی که تحریف شده دوران رسالتش سرامده کتاب هایی که اهده داره بیان وحی خودشون با هم دیگه اختلاف دارند. تا این اندازه یه انجیل بگه گوشت خوک حرام است مشروبات الکلی حرام است حجاب واجب است یه انجیل بگه اینا اصلا جزء رسالت نیست خب کدوم میشه؟ اینو از هم باید جدا کنیم لذاق قیاس قیاس مال فارغه. یه بحثی دارن منطقیون حرف بسیار قشنگیه میگن شما اگر قرار قیاس کنید مقایسه کنید مقایسه باید شرایط قیاس داشته باشه نه معل باشه معل یعنی با همدیگه تفاوت داشتن اگر این میزی که الان جلوبه بنده هست خب چوبیه بگم این میز در آتش میسوزد حالا این میز چودنی اونجا باشه شما بگید پس اون میز هم در آتش خواهد سوخت چرا؟ چون این میز است اونم میز است. خب این میز ولی چوبی است، اون میزه ولی است. آخه این دوتاره چرا با هم مقایسه کردید وحیی که خودش میگه من ادعای تمام و را ندارم وحیی که عقل اثبات میکند تحریف شده وحیی که عقل میتونه اثبات کنه این الان شرایط لازم وحی الهی بودن را ندارد در اونجا حتی اقلیش هم جای سواله تا چه برسه می تواند اکثری باشد یا نه ولی وحیی که عقل اثبات می کند کامل است از طرف خداست تحریف نشده است و خودش ادعا میکنه من شرائط کمال رو دارم این دوتا رو با هم مقایسه می بله ریشه این حرفا در الهیات مسیحیت من دو نمونه امشاب عرض کردم صدها نمونه براتون عرض خواهم کرد که در بین متفکرین یه قوغایی در این زمینه حتی این تفکر کار را به جایی رسون که تحریف در خود کتاب مقدس هم راه پیدا کرد مثلا شما راجب شجره ممنوعه تو همه ی داریم تو تورات داریم تو انجیل داریم تو قرآن هم داریم شجره ممنوعه شجره ممنوعه چی؟ اونی که حضرت آدم ممنوع شد که از اون درخت بخوره و خورد از بهش بیرون آمد در قرآن کریم چی میگه؟ اسم شجره ممنوعه رو نمیبره فقط میگه لاتق رواحازه شجره فتکون نامنه ظالمین نزدیک این درخت نشید خب حضرت آدم نزدیک شد در تورات میگه این شجره ممنوعه ال بوده است. قرارم استاد متحری در یه تحلیلی که دارن میفرمایند به نظر من بزرگترین تحریفی که در دین صورت گرفته یکی شمینه چرا میگه شجره ممنوع علم بوده میگه وقتی حضرت آدم از اون درخت خورد تا قبل از اون تو تورات اینو میگه تا قبل از اون نمیدونست که برهنگی چیه پوشش چیه کجام تا از اون درخت خورد متوجه شد که برهنه است رفع پوشیه درختی خودش رو پنهان کرد تورات میگه خداوند آدم رو مخاطب قرار داد آدم کجایی گفت چون برهنم خودم رو پشت این درخت پنهان کردم گفت از کجا فهمیدی برهنه ای نکنه از اون درخت خوردی گفت بله گفت زود بیرونش کن چون میترسم از درخت جاودانم بخوره هم عالم بشه هم جاودانه دیگه رقیب من بشه و این تکش رو من میگم به تعبیرون دیگه رقیب بیرونش کن بیرونش کردن مرحوم استاد مطهری میفرمان این بزرگترین تحریفه چرا میگن معناش اینه که دین با علم همراه نیست اگه قرار عبد خدا بشی آگاه نشو علم برات مطرح نباشه همیچو کورکورانه گوش کن لذا تا آدم اومد بفهمه خدا بیرونش کرد اما قرآن چی میگه قرآن کریم میفرماید وعلم آدم الاسماع كلها همه رو به آدم یاد داد ثم عرضهم علی الملائکه سپس به ملائکه عرضه کرد و لذا وقتی که ملائک گفتن نحن و سببه و همدک و نقد و لک خدا رحمت کنه یه عالم دینی برجستهی بود مزاه میکرد میگو وقتی ملائکه گفتن خدایا یا ما که تقدیس میکنیم ما که تسبیح میکنیم دیگه چی یه موجودی خلق کنی؟ خدا فرمود مقدس نمیخوام آدم میخوام مزاح میکرد آدم ولی خدا چی جواب داد؟ فرمود انی علم و لا تعلمون من یه چیزی میدونم شما نمیدونید اونی که من میدونم شما نمیدونید چیه؟ مقام آگاهی بشر ببین به کجا میرسه که به مقام خلیفت الله میرسه لذا به آدم فرمود انبعونی به اسماء هاولا خبر بده به اینا؟ یاد بده که چه خبره؟ بر این مبنا ببینید در فرهنگ مسیحیت و در فرهنگ تحریفی کار رو به کجا رسوندن؟ برخی از اینا حتی تا به این عبارت کشیده شدند که این عبارت خیلی عجیبه میگن در اعترافات اگوستین ترجمه میسمی صفحه 176 عقل عقل را سست بنیادتر از اون یافتم که به تنهایی قادر به کشف حقیقت باشد بنابراین باید به مرجعی همچون کتاب مقدس نیاز داشت آنسل در دیباچه بر فلسفه قرون وستا صفحه 84 اینو خوب دقت کنین من در پی نیستم که بفهمم و ایمان بیاورم بلکه ایمان میآورم تا بفهمم ایمان من بدان دلیل است که تا ایمان نداشته باشم نمیتوانم درک کنم خب یه فیلسوف وقتی به این حرف برخوره چی میگه این حرف خیلی مسخره است شما میگه ایمان بیاورم تا بفهمم خب ایمان تو بر چه اساس میخوای بیاری؟ تقلید کرکرانه یا با آگاهانه؟ اگر عقل پای ایمان نباشه همونی که تفاوت بین شیعه و اشائره تو تاریخ اسلام مطرح شد بین شیعه و اخباریون مطرح شد میگه ببینید حتی در علم اصول فقه ما اصولیون اینو مطرح کردن میگن اگر عقل پای نباشه اگر شناخت پای نباشه اگر معرفت پای نباشه شما دچار دو دور و تسلسل میشید. الان یه مثال ارز کنم اشاعره در دنیای اسلام اومدن همین حرفو رواج دادن چی گفتن گفتن خوب چیه اونی که فقط شعر بگه بد چیه اونی که فقط شعر بگه حالا شکل افراطی تفریطی عقل میخوام اینجا عرض بکنم خب نماز خوبه بله چرا چون شعر گفته خب چیزی که شعر گفته خوبه بله چرا چون شعر گفته چیزی که شعر گفته خوبه چرا خوبه میگه چون شعر گفته خب اینکه دور شد که یا تسلسل میشه که میگه پایش و عقل میفهمه عقل میفهمه وحی حقه لذا باید حق بودن وحی را عقل بفهمه بعد بیاد رو جزئیات بگه تسلیمم ببینید ما در اسلام این حرفو میزنیم اثبات میکنیم قرآن وحیه بعد هرچی قرآن گفت میگیم چشم اینجا افراد و تفرید چیه؟ یا اومدن گفتن حتی ایمان فهم نمیخواد لذا فیلسوف چی میگه؟ میگه ولکم بابا این حرفا با. علم جمع نمیشه این حرفا با عقل جمع نمیشه پس دینو بذار کنار یا دین یه محدوده دیگری داره عقل و ایمان هم یه محدوده دیگری داره این در دنیای مسیحیت درسته در دنیای اسلام اگر به اشاعره میگید من این انتقاد وارد میدونم اگر به افرادی مثل اخباریون این ایرادو وارد کنید بنده وارد میدونم ولی به مکتب اصولی اهل در دنیای اسلام میشین ایراد رو گرفت حالا با هم بحث میکنیم خب پس یکی از مشکلاتی که در الهیات مسیحیت بوده و مجبور شدن اگر قرار دیندار باشند دین را اقلی بدونن این حرفا بوده اینام پر تو کتاباشون که من این های عرض کردم حالا بیایم تو اسلام آیا در اسلام میشه این حرف پذیرفت؟ یک ما وقتی با عقل اثبات میکنیم، اینجا دیگه الان اثباتشو از بنده نخواهید چون ما از این مرحله به بعدیم. ولی این قول میدم، اگر دوستان خواستن چشم، من جلسه اختصاص میدم برای اثباتش. ما اثبات میکنیم یک، انسان بدون وحی نمیتونه در این عالم به کمال برسه، دو، قرآن تحریف نشده، آخرین کتاب وحی الهی است که مولا درزش نمیره این دو این دوتا رو داشته باشید فعلا به صورت اصل موضوعی که در جای خودش با ادله اثبات میشه حالا دوتا تا یکی میایم سراغ این کتاب دو میریم سراغ عقل ببینیم کتاب خدا با مفسرینش که امامان و روایاتن و عقل به عنوان یک سرمایه میتونه بگه دین یعنی منظورم این دین این کتاب عقللی است یا موارد اکثری رو میتونه از این کتاب در بیاره اگر اکثری را پذیرفتیم اون وقت یه جلسه با دیم بحث بحثو بکنیم چی باعث شد در پیروان وحی که قائل به اکثریان بازم وحی تحقق نیافته اونجا وقت مشکل یه چیزی دیگره. اونم باید ریشی آبی کنیم. حالا من اجازه بدید تیمونن و تبرکن ابتدا دو تا آیه از قرآن را امشب براتون ارز کنم. اولی همون آیه است که در ابتدای عرائزم عرض کردم که قرآن کریم هم تدبیر تکوین را به ربوبیت عامه پروردگار رفت داده هم تشری را در یک آیه و با چه بیان زیبایی تقاضا میکنم؟ دقت بفر باید. سوره مبارکه انعام آیه سی و هشت. عزیزانی که هم تو مسائل عقلی فلسفی کار میکنن، هم تو قرآن کار میکنن، من ازشون میخوام. اقل سه چهار تا تفسیر رو در زیل این آیه برن مراجعه کنن. بعد اشارهی کلام بنده خدمتتون عرض کنم با توجه به بحث ده شب ده محرم و بحث امشب یه دقتی بیشتری روی این آیه بفرمایید و توضیحاتش به اندازه‌ای که این جلسه وقت داریم و ما من دابتن و فل عرضه ولا طائر نیتی رو به جناحیه الا اممون امثالکم ما فرتنا فی الكتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون بنده کراراً در جلسات تفسیر قرآن به عزیزان ارز کردم ما یک بار اثبات معجزه بودن قرآن را وحی بودن قرآن را با همون ادله خاصی که در اعجاز قرآن میارن میاریم در جای خودشم درسته قبولم داریم اما یه وقت آدم یه وقت با قرآن انس پیدا میکنه اصلا به بعضی آیات نگاه میکنه میگه نمیشه این ترابوش فکر بشر باشه اصلا خود این داره داد میزنه این معجزه است اونم در چارده قرن قبل در سرزمین شرک و کفر و الهاد و جهالت و بربریت و بی اطلاعی اونم یه انسان امیه درس ناخونده پیغمبر اسلام ببینید چقدر مطالبه امیغ فلسفی کلامی حقوقی در یک آیه کوتاه اومده آیه 38 سوره انعام و ما من دابته دابت جنبنده فلارض اینجا فلارض چون در مقابل طائر سما منظور زمینه نه یعنی خشکی در مقابل دریا منظور زمین هیچ جنبنده‌ای روی این زمین نیست اگه مورچه اگه موریانه است اگه زنبور عسل اگه پرنده است اگه چرنده است اگه حیوانات خزنده است اگه شنابران تو دریاست ما منداب وتن هیچ جنبنده‌ای در روی این زمین نیست ولا طائرون یتیرو به جناحهیه و هیچ پرنده‌ای هم نیست که در بالاسر شما با بالهاش پرواز میکنه کنایه از چی یعنی هرچی هست چه پرندگانی که در این بالان چه جنبندگانی که روی زمینن؟ یعنی همه این موجوداتی که تو این عالم هستن. الا اممون امسالکم. امم جمعه؟ اممته. اممت یعنی چی؟ فرق اممت با ملت چیه؟ اینها رو با دقیق بشیم در قرآن. ملت به جمعی میگن که از نظر سیاسی و جغرافیایی یکی ولی از نظر هدف، مقصد، راه پیشوایی ممکنه با هم دیگه اختلاف داشته باشد الان ما میگیم ملت ایران خب از نظر سیاسی و جغرافیایی یه محدوده معینی است با یه نظام معین به ما میگن ملت ایران خب ممکنه تو ملت ایران مسیحی باشه، یهودی باشه، مسلمون باشه، زرتشتی باشه، بیدینم باشه لذا ما افکار مختلفی داریم، آرمانهای مختلفی داریم. ولی بر مبنای یک قرارداد اجتماعی فعلا دوره هم به عنوان یک ملتیم. هر ملتی همینطوره. شما توی هر کشور اروپایی هم برید. همینه تو هر کشور امریکای مرکزی یا لاتین و امریکای شمالی هم برید. باز همینه. فرقی نمیکنه. این میگن ملت. امت بکی میگن جمعی که یه هدف دارن مقصدشون یکیه, راهشون یکیه. امت بی امام نمیشه امامشونم یکیه امامی امت را بر مبنای هدف مشخص در مسیر معین به حرکت میندازه اینو دقت کنید در زبان عربی به مادر میگن ام چرا چون مقصد فرزنده. فرزند از هر جایی قطع امید کنه خودشو میندازه تو دامن مادر از این جهت ام میگن به یه دسته از پرندگان که هم نواخت تو فضا دارن با هم یه جور بال میزنن متحدن پراکنده یکی این بر نه با هم به یک سو میرن عرب بینا میگه امت حالا اینجا این آیه رو دقت کنیم قرآن چی داره میگه هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست و هیچ پرنده ای سر شما تو آسمان نیست مگر اینکه که اینام امتی شما یعنی اینام یه هدف دارن اینام یه مقصد دارن اینام پیشوا و امام دارن بر مبنای اون امام و پیشواشون به سوی اون مقصد دارن حرکت میکنن و پیش میرن تا اینجا رو خوب دقت کنید خیلی ظریفه قرآن مظلومه قرآن روش کار خیلی نشده هنوز تو بعضی جزئیات قرآن باید واقعا روش مکس بشه و این ها رو بزرگان مثل علامه طباطبایی دیگران رزوان الله تعالی علی خون خوردن که اینا رو برای ما بشکافند ولی به جای اینکه بریم ببینیم چی گفتن روش کار کنیم بحث کنیم همینجوری با چهار تا از این مقوله که عرض کردم خودمون از این حرفا جدا کردیم انایت بکنید شما در نظام تکوین عالم موجوداتی که کمالشون تکبینی نیست. تکبی نیست یعنی چی یعنی خلغتی است خلغتی است یعنی اونچه لازمه هدایتشه که او رو به سوی اون ایدئال پیش ببره او رو به صورت تکبینی تو وجودش قرار داده همونیه که قرآن کریم در آیه شریفه ای که حضرت موسا و برادرش حارون به فرعون اشاره کردند فرعونگو اگر من رب شما نیستم رب شما کیه فرمود رب الذی کل شیء خلقه ثم حدا ربنا اونی که قرار ما رو تربیت کنه و نحی بکنه باید و نباید بگه قوانین و شریعت برای ما مشخص بکنه همونیست ربنا اونیست که اعتا کلش شیء خلقه او. هر چیزی را که آفریده خلقت داده سمه هدا هدایتشو دار شده لذا در موجودات جنبنده ارزی در موجودات پرنده سمایی چنان با تکوین اینا را در پیروب یک امامی قرار داده که به اجبار دنبال اون به سوی اون مقصد حرکت میکنه لذا وقتی زندگیشون جمعی میشه زندگی موریانه زندگی زنبور اصل زندگی مورچگان چطور منظم و حساب شده است که هیچ چی تخلف الان حتی اونایی که تو این زمینه تحقیق دارن مثل موریس مترلینگ که راجب زنبور اصل و موریانه و مورچگان کتاب نوشته حیرت نکردن در زندگی اجتماعی اینا که چنان دقیق از این بهتر امکانش نیست میشه ادایت چی؟ تکبینی در این آیه شریفه بعدش قرآن یه دفعه اومد این حرفو زد پس تا اینجا چیه ربوبیت تکبینی پروردگار برای همه جنبندگان همون گونه که امت قرار داده امام قرار داده و تو اون سیر به طبع امام دقیق داره پیش میره بعد یه دفعه میاد صحبت از این کتاب میکنه ما فررت کتاب یعنی شما امتید قرار امت باشید شما امام احتیاج دارید شما قراره به کمک امام امتی باشید که به سوی مقصد حرکت کنید اما اینجا چی فرمود؟ ما فرعتنا فل کتاب منشه این هیچ چیزی را در این کتاب فرو نکردیم خب این کتاب اهدداری چیه؟ این کتاب این نهاز القرآن یهدی للتی هیه اقوام. یه لحظه اینجا مکس بکنید من بیام سراغ یه آیهی دیگه دوباره برگردم در سوی مبارکه نه آیه هشتاد و نو و نزلنا علیکل کتاب بر توی پیامبر این کتاب را نازل کردیم. تبیانن لکل شعی بیان کننده هر چیزی تبیانن لکل شعی و حدن و و این کتاب که همه چیز برای شما تبیان میکنه. حالا نظرات اختلافی را هم عرض میکنم قائلین به حد اقلی این تبیان لکل شعی رو چی میگن؟ بعد با قرائن همین دوتا آیه کنار هم عرض میکنم این حداقلی اقلی نیست حده اکثریه حالا اگه این جلسه هم وقت نشد جلسه بر انایت میکنید نزلنا علیکل کتاب قرآن رو بر توی پیغمبر نازل کردیم تبیانا لکل شی هر چیزی رو داره تبیین میکنه و هدان این هدایت و رحمتا رحمت رحمت است که داره شامل حال شما میشه و بشت را یه بشارت الهی الهیست للمسلمین برای اونایی که تسلیم میشن میگن چشم تفاوتی که در اینجا تبیان لکل شی و قبل از این آخر آیه ما فررتنا نفل کتاب در قسمت اول ما من دابتن فل عرض ولا تائرنیتی رو به جناحه ایه الا اممون کم داره چیه در اون کلمه اسلام آخرشه چون ما انسان ها مختاریم اراده داریم اختیار داریم پذیرش عامل هدایت که هدایت است و رحمت است و بشرا پذیرشش میشه چی؟ میشه اختیاری خب اگر اختیار کردیم نتیجه میگیریم نکردیم نتیجه نمیگیریم ولی برای اون دابه و طائر یعنی هر مخلوق دیگری که در این عرض و سما سیر و امت بودنش دنبال امام رفتنش جبریه چون خاستش دیگه مطرح نیست به اجبار به اون تکاملش میرسه پس شما مگر میخواید مثل اون دابه مثل اون طائر نظامی را که خدا در عالم قرار داده ازش بهرهمند بشید نتیجه بگیرید تسلیم بشید لذا در این آیه شریفه ربوبیت تکوینی بروردگار را با ربوبیت تشریعی کنار هم بیان کرده خدا وقتی که ما من دابتن هیچ جنبنده ای نیست ولایتی رو تائر. مگر اینکه مثل شما امته یه مقصد داره داره به سوی مقصد حرکت میکنه این حرکت بالاجبار بر مبنای ربوبیت تکوینی پروردگار دیگه لذا اگر یک موجود از این دابه و از اون طائر بخواد خلاف اون نظام ربوبی پروردگار حرکت کنه نابود میشه یا نه مثلا کلاق بگه من دلم بخواد برم تو آب مثل ماهی شنا کنم ماهی بگه من دلم میخواد مثل مثلا کلاق بیام رو شاخ آب ببرم مساویس با نابودی چون براش تدبیر شده این تدبیر تدبیر جبریه این ربوبیت جبری پربردگار برای کل مخلوقاته اما من شمای انسان مختاریم نمختاریم ربوبیت پروردگار رو کنار بزنیم بله میتونیم ربوبیت پروردگار رو نپذیریم ولی این اختیار باعث میشه چون ربوبیت پروردگار رو نمیپذیریم تربیت الهی نمیشویم وقتی تربیت الهی نشدیم به اون نتیجه ای که نظام ربوبیت الهی قرار ما رو بکشونه نمیرسیم پس چرا هدف انبیا تحقق نیافته در موجودات مختار دخالت اراده برای تسلیم در ربوبیت الهی مشکل داره لذا روایات در این زمینه قوغا میکنه اجازه بدید فقط فعلا تیمنا و تبرکن یک تا روایت رو هم اشاره کنم بحث رو بذاریم برای جلسه بعد الله. از امام باغر علیه و السلام و سلام در کتاب تفسیر نور الثقلین جلد سه صفحه 74 ان الله تبارک و تعالی لم يدع شیئا تحتاج الیه الامه خداوند چیزی را که امت نیاز دارد رها نکرده است خب اگر ببینید اگر عزیزان این براشون سوال بشه در تکوین الان شما در نظام تکوینی این عالم اگه قرار من انسان باشم باید موجودیت من این باشه خدا منو موجودی بیافری ند مثل مجسمه سنگی یه مجسمه سنگی باشم به من وقت بعد بگه عنوان انسان تعالی پیدا کن باید مجسمه میتونه تعالی پیدا کنه اگه قرار انسان باشم باید اون که لازمه موجودیت منه بده دیگه همین طوری که در تکوین ما میگیم خدا حکیم است فائل حکیم در فعلش حکمت است لازمه حکمت در فعل فائل حکیم این است که فعل نقص نداشته باشه خب شریعت که تجلی ربوبیت پروردگاره فعل ربوبیت پروردگاره فعل ربوبیت پربردگار اگر کاهش داشته باشه پس فاعلش کاهش داره این با خدای خدا نمیخوره لذا مام باقر ببینید این بحث عقلی را چقدر زیبا عقلیه در این روایت چگونه بیان میکنه ان الله تبارك وتعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه اونش را که این عمت نیاز دارد خداوند فروگذار نکردی هیچی را الا انزله فی کتابه مگر اینکه در کتابش فرو فرستاده، داده تبیانا لکلشی معناش اینه و بیانهو لرسوله اینو برای رسولشم تبیین نموده و جعله لکلشی حدا برای هر چیزی میزانی قرار داده حسابی قرار داده و جعل دلیل علی حد دلیلا یدل علیه و دلائل قرار داده که شما رو با اون حد آشنا کنه وقت مهم اینجاست و جعله من تعدی زالک الحد حد دا و کسی که از این حد الهی تعدی کنه حد الهی را نپذیرد خدا برای او هم یه حد قرار داده مثلا این حد چیه؟ چقدر باید داریم اگر کسی زیر بار حق نرفت خدا چه بلا نازل میکنه خدا چه میکنه خدا چه میکنه خدا چه میکنه, میکنه؟ اینامون حده خب چرا امت اسلامی که و چنان شدن شما تو دعای کمیل هر شب جمعه میخونید اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء تغير النعم تحبس الدعاء اینا همه نظام الهیه این همون حده یعنی خدا حد قرار داده اگر شما تابع حکم الهی نشدید این مشکلات برای شما پیش بیاد پس یکی از مشکلات ما اینه ما عقل را برای فهم درست ربوبیت پروردگار که اولین صفت پروردگار بعد از خالقیت در قرآن کریم مطرح میشه خیلی جاهای قرآن کریم بی مسئله اشاره شده بد ارز خواهم کرد و ربوبیت پروردگار فقط تکبینی نیست تشریعی است ربوبیت تشریعی پروردگار مثل ربوبیت تکبینی پروردگار نمیتونه ناقص باشه مگر پروردگار ناقص باشه این بحثون وقت اجازه نمیده قد و اگر نه از نهر البلاغه آورده بودم بخونم مطالب دیگه ای بود امشب وقت اجازه نمیده اجازه بدید بحثو جمع کنم ان شاء الله شب جمعه ای آینده به لطف الهی به قید حیات این بحثو با هم پی بگیریم فقط امشب اون باشه چی عرض کردم ریشه اقلی نگری دین مال الهیات مسیحیت در الهیات و مسیحیت چاره نداشتن یا باید قاطانه میگفتند وحی غلطه؟ بالاخره مذهبی بودن. بالاخره با یه تحلیل های عقلی می دیدن. انسان به پیغمبر نیاز داره حقانیت اصل حضرت مسیح براشون جا افتاده بود واقعا حضرت مسیح پیغمبر الهی بوده این نمیتونن رد کنن ولی میومدن تو کتابایی تعریف شده میدیدن تو مبانی گفته شده میدیدن وقتی یک فرد میاد میگه من نمیخوام بفهمم تا ایمان بیارم ایمان میارم تا بفهمم بعد میگه اخی این با عقل تطبیق نمیکنه این دور میشه این تسلسل میشه اینو چه جوری میخای بپذیری لزامی در کتابم دست میبرن میگن علم و دین با هم جمع نمیشه شجره ممنوعه علم بوده است نه ما اسلامی داریم میگه اصلا مبنا بر تعلیم و تعلمه لذا شروع وحی پیغمبرم اقره بسم رب بکل لذی خلق رب و خالق اقره بسم رب بکل لذی خلق خلق الانسان من علق اقره و رب بکل اکرم الازی علم بالغلم انسان الانسان مالم یعلم یاد بده به انسان ها نفهمن یاد بگیرند لذا دو رکعت نمازی یک انسان با معرفت طبق روایت امام صادق علیه السلام به اندازه هزار رکعت نمازی انسانی که اون معرفت و نداره براش ارزش قائلن این مع الفارق بین الهیات مسیحی و الهیات اسلام ما رو به جای رسونده بیایم بگیم قرآن هم رسالتش حد اقلیه ما میخواییم از قرآن مند داشیم فریاد امام حسین علیه السلام هم این بود سه نکته یک یا نفهمیدید دین چی میگه رو فرمایشات امام حسین خطاب به اون مردم یک پس نفهمیدید دین چی میگه یکی نفهمیدن دو فهمیدید هوای نفس نمیذاره تعلقات نمیذاره سه افرادی برای سوء استفاده شماها را عجیر خودشون کردن لذا حضرت گاهی با این بیان آیا حرامی رو حلال کرد حلالی رو حرام کرده. یعنی چی یعنی مگه حکم خدا رو میشه عوض کرد اگه من حسین پسر پیغمبر حکم خدا رو جابجا جا کرده باشم بخواید منو بکشید حق دارید یعنی انقدر حکم خدا رو جابجا جا کردن میتونه آثار بدی داشته باشه اما وقتی با حور برخورد کردن چی فرمودن؟, فرمودن مگه شما از رسول خدا نشنیدی کسی که حرام خدا رو حلال میکنه حلال خدا رو حرام میکنه یعنی تو ربوبیت خدا دست میبره اون نظام ربوبی الهی رو میخواد در امت الهی جابجا جا بکنه حاضر به تغییر نباشه و در صدد روشنگری برای این تحول نباشه با همونایی که این کارو کردن محشور میشه اینم فرمایش امام حسینه خب امام حسین به چی قیمت این کارو کرد؟ خود امام حسین تا جان داشت استاد تا به اون کیفیت در گودال قتلگاه سر مبارک از بدن جدا شد ولی خود قبل از این مرحله به خانواده نگفت ایستادگی کنید باید برید بادرو شنگیری کنید، بادی مطالب رو به دیگران برسونید. حالا به چه قیمت؟ وقتی که عصر آشورا سرعوی عبدالله رو از بدن جدا کردن، دادن به خولی. خولی اسب چابکی داشت، خیلی بندرو بود. عمر صد گفت ما مجبوریم امشب فعلا در کربلا بمانیم، چون فردا باید شهدای خودمون رو دفن کنیم و اون قزایایی که دارن شما سر و سری ببر به ابن زیاد بده بگو کار تمام شد خولی سر رو برداشت با شتاب آمد ولی وقتی به کوفه رسید حکومت نظامی بود دیر شده بود در دارال اماره رو بسته بودن خب نمیتونست شب وارد دارال اماره بشه گو میرم خونه سر و امشب تو خونه نگه میدارم صبح زود میرم دارال اماره و سرو میبرم همسر خولی شیعه بود من به بعضی از خانم ها عرض کردم یک کار خیلی خوب تحقیقی اینه نقش زنان در واقعه کربلا و بعد از کربلا در روشنگری هدف امام حسین علیه السلام. اینا خیلی کار کردن. نمونه هایی تو تاریخ داریم. من جمله همسر خولی است. خولی نگران بود که الان زنش سر و صدا کنه. معمولا خونه های قدیمی دم در تنور داشتن. که اونجا آشپزی میکردن نون میپختن خولی یواشکی دم در در تنور و برداشت سر وریده یعبی رو تو تنور گذاش روی تنور و گذاش اومد داخل شد خب زن خولی هم نمیدونه سالا چه خبره چیه شب گذشت نیمه های شب زن خولی پاشد نماز شب بخونه دید خدایا از آشپزخونه خونه نور میاد یالالعجب ما که آشپزی نداریم کاری نداشتیم چراغ روشن نکردم اومد نزدیک تنور دید صدای زمزمه ای میاد قرآن خونده میشه خدای این قرآن چیه اومد در تنور رو برداشت دید عجب سر بریده ابی عبدالله تو تنور خونش داره قرآن میخونه اومد پشت بام داد زد زنای کوفه بیاید امام حسین مهمان من شده صلى الله عليك يا مولا يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين, وعلى أصحاب الحسين اللهم باسمك العظم العظيم الاعز الجلل الاكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمان يا رحيم یا مغلب الغلوب ثبت قلبي علا دینک وکفنا یا غازی الهاجات و یا کافی المهمات انکه مجيب الدعوات انکه علا کل شيء قدير برحمتك يا یا ارحم الراحمين و یا قیاس المزتر المستقیسین یا سریع الرزا اغفر لمن لا يملك إلا الدعا و ماله الرجا و سلاح يا سابق یا سابقا یا دافع النقم یا نور المستوهشی في الظلم، یا آلمان لا یعلم، صل على محمد و آل محمد، وفعل بی ما انت ولا تفعل بی ما انه اهلو، الهی یا حمید و محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و تسعه المعصومین من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصارهی هي واعوانه اللهم انصر من نصر الدين وخز من خزل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم شغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم اجعل اباقى بع امورنا خیرا، اللهم وفقنا لما تحب وترزا اللهم لا تسلت علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا من وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء والسلام عليكم ورحمه